گرامیان درود بر شما فایل آوایی چهارم از کتاب برهان علیت برهانی در رد وجود خدای ادیان و روز جزا نوشته نون رو با هم آغاز می‌کنیم صفحه 50 عنوان هفته سوم آغاز برهان علیت هستی و نیستی ناباور بعد از نگاهی به بشقاب خالی مؤمن گفت تو استدلال هایی بر پایه وجود نظم در آفرینش و نیز وجود روح اقامه کردی و من خطاهای هر دو را گوش زد کردم. آیا فکر میکنی برهان دیگری برای اثبات وجود خدا داری؟ مؤمن من فکر میکنم تو به درستی متوجه عمق برهان نظم و مسئله روح نشده ای وگرنه این دو برهان هر دو قوی و متین هستند و توسط علما و فلاسفه بزرگی مطرح شده اند. ناباور بیا از بکار بردن عباراتی چون برهان قوی، متین، عمیق و این قبیل الفاظ تبلیغاتی پیرامون استدلال هایمان پرهیز کنیم یا فقط دلایلمان را بگوییم و اشکالات و مقلتهای دلایل یکدیگر را مورد به مورد استخراج کنیم و با زبانی مشترک که هر دو میفهمیم به یکدیگر نشان دهیم. اگر در ایرادهایی که به برهانهای تو گرفتم مغلتهی به کار برده هم دقیقا همانها را کشف کن و برایم بازگو کن. اگر متوجه نکته عمیقی در برهانهای تو نشده آن نکته را با کلمات فارسی به شکلی رسا برایم روشن کن. اگر بنا باشد هر کسی که نمیتواند نقاط ضعف استدلال های طرف مقابل را آشکار کند، آغاز به بزرگ کردن نظرات خود نماید و بگوید تو منظور مرا نمیفهمی و یا به عمر آن پی نبرده ای و یا دلایل من بسیار قوی هستند و توسط فلاسفه بزرگی مطرح شده اند، مباحث به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید و در نهایت آنکه زورش بیشتر است و طرفداران کثیری دارد و یا قدرت حکومتی را در دست دارد میتواند به تبلیغات عقاید خود و تدریس باورهای خود به کودکان جامعه بپردازد در این صورت دیگر نیازی به منطق و موشکافی نیست و فقط باید به حیاهو و لفوازی پرداخ اگر کسی بتواند بر اساس مشاهدات و آزمایشات به دیگران از هر دین و مستکی که باشند ثابت کند که واکسن کزاز موثر است میتواند دانش خود را همه جا گسترش دهد و آن را در سیستم آموزشی کشور نیز بگنجاند. اگر کسی بتواند با منطق ریاضی به همه از هر دین و مستکی که باشند ثابت کند که زوایای داخلی یک مثلث در هندسه اقلیدوسی برابر 180 درجه است می میتواند این را به عنوان دانش وارد سیستم آموزش و پرورش کند. دین یک مسئله نظری است. اعتقادات دینی هم باید به طریقی به همه اغلا از هر دین و مسلکی که باشند قابل اثبات باشد. اگر قابل اثبات نباشد پس نمی توان آن را وارد سیستم آموزش و پرورش کرد. اکنون من بهتون نشان دادم، که براهین تو اصلا برهان نیستند و قابل قبول نمی باشند. اگر می به آنچه گفتم اشکالی وارد کنی این گوی و این میدان. فقط نگو که دلایلت عمیقند و یا طرفداران سرشناسی دارند و روحانیون دینت را به عنوان آن طرفداران سرشناس نشان نده تا من هم لیست بلند بالایی از متفکرین و فلاسفه مخالف دین را نشانت ندهم. هیچ کدام از اینها نه برای استدلالهای من و نه برای استدلالهای های تو پشتوانه حساب نمی شود و کار من به هیچ سرانجامی نمی و خودت هم چنین دلایلی را از من نخواهی پذیرفت. مومن کاملا میفهمم چه می گویی. بسیار خوب. من برهان دیگری را برایت شعر می دهم که در واقع مادر همه برهانهای خداشناسی است. برهان علیت پاورقی در قالب برهانهای خداشناسی الزامی بودن وجود علت برای پدیده مورد نظر بدیهی فرض شده است. مثلا در برهان نظم پدیده مورد نظر نظم هدفمند است و نیاز به وجود علت برای پدیده نظم هدفمند بدیهی فرض شده و به اثبات اصل نیاز به علت پرداخته نمی شود. و تنها تلاش می گردد که یگانه علت ممکن خدا معرفی گردد. اگر اصل نیاز به وجود علت را فرضی خطا بیابیم، قالب براهین خداشناسی بی اعتبار می شوند. اثبات نیاز به وجود یک علت بخش مهمی از برهان علیت است. ادامه مطلب ناباور سراپا گوشم مؤمن برای طرح برهان علیت لازم است ابتدا دو مفهوم را شرح دهیم. اول مفهوم هستی یا وجود و دوم مفهوم نیستی یا عدم. عنوان مفهوم هستی اگر بخواهیم وجود را تعریف کنیم باید ابتدا به آنچه در بین مصادیق وجود مشترک است توجه کنیم. همانطور که اگر بخواهیم انسان را تعریف کنیم ابتدا باید چند مستاغ از انسانهایی مانند تو و من را در نظر گرفته و سپس ببینیم این انسانها چه صفات مشترکی دارند. صفات مشترکی که همه انسانها را در خود بگنجاند و همه غیر انسانها را خارج نگه دارد تا به عبارتی به تعریف جامع و مانع برسیم. به همین ترتیب، اگر بخواهیم تعریفی برای هستی و وجود ارائه دهیم، باید مصادیق هستی را در نظر آبدیم. می بینیم که دست بر روی هر چیزی که بگذاریم شامل هستی می شود و یکی از مصادیق هستی است. اگر بخواهیم هستی را تعریف کنیم، باید بگوییم هستی چیزی است که در اینجا متوجه می شویم. پس از که هر صفتی و هر توضیحی که بیاوریم ممکن است بعضی از مصادیق هستی را از این تعریف خارج کند. مثلا اگر بگوییم هستی چیزی از که حجم داشته باشد این نکته توجهمان را جلب می‌کند که شاید چیزی باشد و حجم هم نداشته باشد. یعنی شاید هستی بدون حجم هم داشته باشید. به هر حال آن چیز هم چیزی است که وجود دارد و هست پس نباید صفت حجم داشته باشد را به کار ببریم مبادا که اشتباهاً برخی از چیزهایی که وجود دارند بیرون از تعریف ما جا بمانند و تعریف ما تعریف جامعی نباشد از آنجایی که مطمئن نیستیم همه ی انواع هستی را شناخده باشیم و صفات و خصوصیات همه آنها را بدانیم به این نتیجه میرسیم که نباید هیچ صفت و توضیحی برای هستی ارائه کنیم فقط به این وسیله مطمئن خواهیم بود که تمام مصادیق هستی را وارد تعریف هستی کرده ایم پس در تعریف هستی فقط باید بگوییم چیزی که و دیگر ادامه ندهیم و یا بهتر بگویم در تعریف هستی فقط باید بگوییم چیز هر چیز یک هستی است. و فرقی نمی کند چه باشد و چه خصوصیاتی داشته باشد. هر شیع یا هر چیز مستاقی از هستی و وجود است. چیز بودن یا شیع بودن برای وجود داشتن کافی است. مادی یا غیر مادی، جاندار یا بیجان، واقعیت یا خیال؟ ناباور حتی خیال؟ مومن بله، حتی خیال. خیال هم یک چیز است البته از جنس واقعیت نیست مثلا خیال و توهم وجود یک سراب در دوده است از جنس آب واقعی نیست اما به هر حال چیزی است که در ذهن شخص متوهم وجود دارد آب وجود ندارد اما توهم آب وجود دارد برای وجود داشتن جنس چیز خصوصیت مهمی نیست چیز بودن آن مهم است و آن را وارد تعریف وجود کند. پس توهم سراب هم وجود دارد. اگرچه جنس آن را اصلا ندانیم که چیست. تداعی یک خاطره در یک لحظه از زمان نیز برای خود یک چیز است. جنسش و خصوصیاتش هر چه می‌خواهد باشد. می‌شود گفت که این خاطره دیگر در عالم بیرون از ذهن وجود ندارد، اما در عالم ذهن وجود دارد. پس چیزی است. هر بحثی پیرامون اینکه این خاطره از چه جنسی است و چقدر باید در زندگی خود به آن اعتنا کرد خدشه ای به چیز بودن و وجود داشتن آن خاطره در لحظه ای که در مغز شخص تشکیل می شود وارد نمی ناباور بسیار خوب. فهمیدم که منظورت چیست. تو از اینجا به بعد می خواهی اگر قاعده ای را به وجود نسبت دادی؟ این قاعده هیچ استثنایی نداشته باشد. امیدوارم این قاعده هرچه هست واقعا متناسب با وجود یا چیز باشد. مومن درست فهمیده ای. من باید قاعده ای را طرح کنم که منطقا شامل هر وجود به هر شکلش باشد. عنوان مفهوم ادم حال برویم سراغ عدم یا نیستی؟ اگر بخواهیم عدم را تعریف کنیم در قدم ابتدایی به این جمله برمی‌خوریم عدم چیزی است که همینجا باید توقف کنیم چون هر چیزی وجود بود هستی بود پس عدم چیز نیست عدم اصلا نیست که بتواند تعریفی داشته باشد عدم یک فضای خالی یا یک مکان ساکت و تاریک نیست. مکان ساکت و تاریک و یا فضای خالی را ممکن است بتوان در تخیل به صورتی به تصویر درآورد. اما عدم نباید بتواند به تخیل درآید، زیرا اصلا وجود ندارد. تصویری ندارد تا به تصور درآید. آدم اصلا چیزی نیست که بتوان صفتی را به آن نسبت داد و یا دربارش خوذیحاتی داد ناباور یعنی میشود گفت که عدم یک راز است که همیشه رازآلود میماند و نمیتوان به خصوصیات آن پیکر. درست است مؤمن به هیچ وجه درست نیست وقتی عدم را یک راز بدانی در واقع آن را چیزی دانسته ای تعریف پذیر نبودن عدم به این دلیل نیست که دانش ما برای توصیف و شناخت آن کافی نیست. عدم برای ما راز نیست. برای هیچ کس راز نیست. برای هیچ کس راز نیست زیرا هیچ علمی به عدم و نیستی تعلق نمیگیرد. اصلاً اصلا عدم و نیستی چیزی نیست که بخواهد معلوم باشد یا مجهول. بزرگترین خطا در مورد عدم همین است که فکر کنیم آن را نمی شناسیم. ن میتوان آن را شناخت و نه میتوان آن را نشناخت اصلا حتی نمیتوان با زمیر آن به عدم اشاره کرد تمام اینها خطای ذهن ماست چرا که میخواهد ادم را هم مانند هستی چیزی بداند ادم نه در ابتدای چیزی است و نه در انتهای چیزی عدم یک سکوت تاریک نیست که دارای زمان باشد و آنقدر زمانش سپری شود تا به هستی برسد پس این تصور از عدم هم خطاست هر تصویری از عدم و نسبت دادن هر پتانسیل و قابلیتی به عدم خطایی فاهش درباره درک مفهوم عدم است مومن سکوت کرد و لحظاتی به چهره ناباور نگاه کرد ناباور به میز خیره شده بود پس از دقایقی سکوت ناباور گفت من باید بیشتر به مفهوم هستی و عدم فکر کنم. راستش مفهوم عدم ذهنم را درگیر کرده است. اجازه بده بقیه بحث را هفته بعد پیل گیریم. مؤمن ولی تازه شروع کرده ایم. نابابر. بله. ولی به نظر می مفاهیم هستی و نیستی اهمیت زیادی در این بحث دارند و باید معنایشان برایم کاملا روشن شود. مومن. کاملا موافقم. گرامیان همینجا در صفحه 54 و چهار آوایی چهار روم از کتاب برهان علیت پایان میابد. تا درودی دیگر بدرود.